دستو دلم آن سیر و سرکه میجوشه هیچ شور میزنه هیچ جوش میزنه هیچ شور میزنه هیچ جوش میزنه دلش چوره بیجا نمیزنه مهربون جا تویت بی خبر جایی نمیرفت این همه سال با هم زندگی کردیم پیش نمیاد اینطوری منو نگران بذاره میترسم گرفته باشنش به چه می؟ آجی تو مشهد زندون آره الان یه سالی میشه بدون نامو نشون از این شهر به اون دیار سرگردونی معمول حکومتی که میبینم چهار ستون بدنم میلرده میدونستم میدونستم بالاخره پیداش میکارم صالحه فکر کنم بدونم کجا میتونم پیداش باشم بهروز بهروز بهلو خوشم نمیاد خوش, خوش, خوش, خوش نمیاد کجا بریم بابا میخوای ما رو اونجا قفل کنم قفل چیه میدونم کجا رفتن رفتن خونه شو گوسلطنه پشو میگم مارم ما رو میگیرن ما رو بدی حبس اگه تو الان نریختن اینجا به خاطر تمام این شده که من زدم اینجا اونجا اونجا ام 100 تو نور دید بلاش بیارم. بلاش منم میخوام. میگم میگیرنونا. کجا میگیرن بلاش بیارم میخوام میگیرن. برو برو خیر خو. باشه بیاری. ای بابا. وای. باشه خانوم. باشه پیش از نمازت یه کل آتش بند دستون سامو ب. باشه مامجد. باشه. نه ایمان. نه پول. همان از دست مردا همه تو سرتفاف های کربازی تازه این جنس خوبشه گار نه اینگاه چشم انتظارشه یه جماعتی آلا خون بالا خونه خودش کرده با من اصلا این یارو میاد اصلا یه جوریه مهرات خواه خدا بیامارس یه چیزی میدونست که از این بدتونی اومد این نور به قبلت دواره سرلنکه تنها چیه که ممکنه کاری بکنه برامون رو با این یارو دائما خماره بساط لازمه یارو برنده تنبونیش از دست در نره آورده حالت خوش نیست دا چلا؟ حالم خوشه؟ است خوابم خوش نیست میری پرکا با هم نرسید چند شبه انگاری بخته که آقا دستت در در گوالش کن من فقط میرسی کن برمیگردم ببینم میتونم به کپم چرا؟ من چه اینم چرا آقا کی تو این دور زمانه حال روز خوشی داره که حال روز ما خوش باشه گولبچه فقط برایت بود به خودش آثار برسیده دیدم یه نفر ازش به یا شکایتی داشته باشه که تا تونسی همچین آدم ای رو نفل کنی چطور؟ بهت گفتم حواس نواشی این بچی تلف میشه بهت گفتم یه کار کن که نتونه بره دونبال اون بازی نکمتی مرگ بهران مقصر زیاد داره ولی مقصر اصلی توی فکر نکن به همین راحتی چارش کردیم یه خربار خواهد دفتهیم رو سرشو رفتیم زندگی یا داشت دختر د بی خودداری تو، خدامت تو بگیر. اول خانم سکیبا سلام. سلام. با جناب عطابر کار دارین؟ ایشون اتاقشون عوض شده. بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. میان خاطر شما تأسف خاطر. خانم اکیبا میگم بفهمیم سلام سلام قصد مزاحمت نداشتم نه بیا تو چند کلمه حرف دارم اگر زنده اشتباه نبرده باشم اومدین سراغ دایی جونتون رو بگیریم حت بزنم بیایید منو همین من امروز اخبارو شنیدم واقعا متاسفم بشنید بفرمون بیر کنید عذاب گذشته هست ممنون پرونده وزینی داره این جناب ها ای. تو مراسم مهراد خدا رحمتش کنه تو مراسم دیدمش جمعون کردم مرد بی آزار و مومنیه ولی پروندهش ناجور سیاهه چه پرونده ای؟ قرار از زندان حاج خود البته بنده زیاد بالا و پایین ماجران رو نمی دونم شما می کاری بکنید من ببینمش ببینمش هاسترمه ما بهش نکشیه هاش موت میشه میرهو فهمید زن که زال زندگی باشه آقا مظفر به والله دلم میره واگرنه من دوستام ما داداشم نمرده راست گفتی دکتری که تو عاشش وجود تو تو گوش نوا راه روزو شب نمیشه ها من میگم برو دیگه خودمون دکتری به خودمون حاج سرش نشه نمیگن که تو بچه الان کنم میشن بارو بده آقا مظفر عشق ای بابا هر من میگم نهر تو میگی به دوش باش. پاشوارو کمشا تو همش بله دالام چه دونه اه تو چه ته ما یه یه دستم نمی نمی صرفی؟ چرا همین آره بیدم همینو دارم اینکه با این که نمیشه تماقه آدمه بگیری ای با بیا اینه بگی ای با بشه ای با شمونه یه با مفرش نکنی بول بکیاب بردم پس پسش میگیرم توی یه قواز سیام نمیرزه ای با امروز روز گوز افتادیا، آق و زفه ظالم باش ظالم باش یه با بارو بیان بابا با ما روز بست کلابس گنتش بود از این همه خودتیم از این سلوم که این در کمان آرامش و حقیت بدایی خودش کنه. رفتیم در درمان پشت سر خودت مرند چشف با فکر میکنی تا که اونجا نگهش داره. اون نکنم زیاد دوون بیاره از اون خراب شده کسی نتونست زنده بیرون بیاد نمیخوام تای دلیتونو خالی کنم و جون سختاشم بعد از سه چهار مانتونو سم بیارم گریه نکنید بگیریم. تمیزه اشکات رو باش پاک کنید تو رو خدا گریه نکنید به ظاهرم نگاه نکنید دلم نازک کسی تو رو گروه کنه اختیارش جاری میشه نه نه نه پیشتون بمونه یادگار مادر خدا بیا هم مرزن دست شما باشه بهتری ماشین آماده خوربا به چه جامی اونجا نگهش داشتن؟ چش. بعد از رویه در خونه بد مگم اولی که با ارجه نرفیقشی میگن حد که با ارجه نرفیقشی به اندازه روز شب میانم پول میانم زدزیر با اما راه دوم ممکن تره ایناره میبری پول میکنی باز برمیگردی زیاد. باز دوباره میبری پول میکنی باز برمیگردی همه تونه لاخه دو دلی من با آدم دو دلی باملیم سب بابا ای با خیر خوب بیچاره هم میتونی سور سار خواهی را بندازی هم یه چیز تایت جیوت میمونه این هم میمونه پیش من که یه وقت نکنی که اینا را دود کنه بره تو هوا شش دود نمیکنه. بایزه اینجا چی کار میکنی؟ اینجا ملک منه تو اینجا چی کار میکنی؟ نه نه گفتم اینجا چه غلطی میکنی؟ من فقط دکتری جابا پشت میادم که اشتباه کرده باشه. این من تو رو اشتباه کرده نمیخوای بگی اینجا چیکار داری؟ دندوژنتیروژیم قراره قرار کجا برم و چی کار کنم میرم منتقل در دستور که معلومه باید تک تکشون رو بفرستیم به درک اینو خانه که من از شما پول میگیرم پس از شما دستور نمیگیرم دوی گلله ها برای خودت گلو با چه میکشی؟ واقعا که دل خوشی داری تا اینجا اتراخ کردم خوش ندارم کسی به دستوفان باشه خمیدی؟ اگه به پول بدم چی؟ اون وقت گوش میدی؟ باره خونه شازده خانه بابا دایی آذر دیگه‌ای آورده. کردی؟ آقا بودت پیگیری کنم. از... شب بذارم ببینمش. می می تو سر واسه می‌گیرم این دفعه. آقا تا اینجا اومدی این داخل. مگه قند <مزن> ندادی که قند دادم میدونم. ولی دلم طاقت نمیاره. تو ای تو که میشناسی. خاطر ذوقتش نمیره. آخریم بی همه چیزا میذانم می‌کشنش من میدونم. از <مزن> گوهرش چی میدونی؟ حاج دایی چراختی به ما <مزن> داره؟ بعد مرگ رضا ما دیگه زندگی نداریم بده چشه میخواد مردم آگاه بشن اونجا چه اتفاقی افتاده از مشهد اومده تنها چون جامعی رفتن بی بریم یه داره دیگه بمونیم بیا, بیا بریم بیا بریم میخواد با... چند وقت موازبه فروغ باشی. هرچی ازت خواستم نه نمیادی کارت طولانی میشه بوی در سر میاد هیچوقت انقدر پول گرفته بودی <متصال> میدونین روزنامه هرزی قاتل یک چشم چه چیزه نوشتن؟ تا راننده شکوه شکوح و سلطنه دیگم تایی سراغه ندیرم شکوح به چشم نردبون میبینی خانم جونه تو اونه از بنده خواسته که چشم از اتون بیرن من همین اشرافی پلیکم هر از چنگایی هم یه نگاهی میدازم تو میمرستم بشرات بیزارم کاری نکنین که فکر کنم مگس مزاحمی. چشه؟ توریش نیست آقا دیگه الان نبوشید. اورژداری رسولیشش کنی تا به حرف <تصفيق> بیاد، به عقیده فدوی برش گردونی مشد خیلی بهتره. به قول قدیمیا ها هرچی دورتر از چطور بخوابی، کمتر خواب شفته بهتره ردش کنی بد. نه، همون کاری که گفتم بکنی. نه آقا طوریش نیست. تیر خورده رو کفشش تو چرم گیر کرده و پاش به اندازه یه میخ آسیب دیده. چرا به گوشو گوش نیست. خط داغونه. تمام بدنش پر از لخمه گذاشته است الان میخوانید استنتاقش کنید؟ به نظر شما این لاشه میتونه لباس لب کنه؟ برای به حرف سده باشه از لاشه شا به حرف در میاری. پس شما بفرمایید شما بفرمید باید ترشک کن اینم جنازه؟ خودت زادی می‌مانش ها. آه بالانشو. رو آرد در مون کردی، بالانشو، بالانشو، چند، احزاب را مملو از عطر آیات الهی کنید با اپلیکیشن ایران صدا تلاوت‌های ماندگار با صدای قاریان برجسته ترجمه فارسی به همراه آموزش هلث روحانی و تجوید اپلیکیشن ایران صدا را از ایران صدا داتای şey farkı müşteriyim. Kolay ve şey. Kolay kolay şey. Kolay kolay şey. Kolay شوال چه چونهایی؟ سلام. سلام. این چه وضع حالیه؟ چی شده؟ دستش نرازه. ها شما قافل چید تشوار باید جماعت خواب زده باید بفهمه چی بود و چی بازشت این ماجرا همچنان باید دن به دن بچرخه این اکسا از هار درد نگفته تو که من داشتم حال بعد اون ماجرای بود به بهانه تمیزکاری و رنگ کردن رفتیم مسجد که چند نفر تونستم یه تمدادی عکس بگیرم ولی کافی نبود وقتی فهمیدم شما هم عکس دارین تعجب کردم یه دوری تکذیب میکنن و میگن خونی ریخته نشده که انگار آب از آب تکون نخورده مچره گهرشادو خون گرفته بود بله این همه مدت مردم بی خبرن منم ما اونجا بودم در است کشته پشت ساختم رزاشا با سینه زنی و پا راه را رفتن جلوی دسته های شروع کرد ولی کارش به جایی رسید که مردم خودشو کش این اکسه اکسه معمولی نیست تاریخیه گفته باشم این اگه بدون کسی این اکسه هم راشه بهش رحم نمیکنن، کنم زیاد فرصت سید با این آرزو تبریستو هم دست کسکی بتونو چاپ بشون و در انظار قرار بده دیگم اگه بخوای من یه جای پنهونی برای تهیه کنم یه دو سریزی استراعت کنی بعد اقدام کنی آیا حال روزت بتره یه نظر محتاط باشی احتیاط کنی نمیتونم بختنگه بد دارم در احوان خودم بیزرشم به خودم اسمارم یا علی فروغ فروغ نگرد پیداش نمی کنی. همیشه جایی پنهان هم میکنه که فکرشو نمیکنی چرا فکر میکنی دنبال چیزی میگردم پول داری اصلا نصب داری و سه چی همیشه با داشته باختی. بختی منظورتون اونی که عاشقشی تا حالا چند تا نامه داده میگه دو سه خط نامه پروکنی کرده که دل منو بسوزونه یه برای خودت بخونی و ببینی مادرت چقدر به گفته در جونت هزار جور خود رنگ بهت زده اون پسر که بدبخت از دوری تو داره خودشو میندازه تو آب رتخنه دلیتو جمع کن برو میل به بدبختی کین توزی داره تو رگش به جای خون کین موج میزنه تو این خونه دیگه جایی برای ماندن تو نیست این حرفاتون رو میگیرم میذارم به حساب زیاده رویتون در مصرف افیون یاره من حالم خوبه؟ آخه حالش خیلی بده. دکتر دیگه‌ایم الان در دسترس نیست. پیداشون کنیم. بفرستین دنبالش. هر کدومشون دستشون باشه یه کاری خوب. یا الله یا رب یا یا یا یا یا یا مستبین یا خود جناب یا سلام سلام دکتر به باودار پیغون دادی ای؟ بله بله خیلی تو راحت باشه براتون غذا قضا بردم ببر بده این سلول بغلی دیشب تا صبح ناله میکرد من غذا اینجا بستمه چشم مریض چطوره؟ به لطفه شما سرفاه شده خدا روش این روزنامه امروزه فقط روزنامه ای دیروزه حتما به بده یا ای دکتر من امشب نیستم هر کاری دارید همین الان بگید نه کاری ندارم. فقط حواست به هادوی باشه اومد قرار ملاقات شما همین بود باشه چشم زود برقص ای دکتر شفات رو عظيم شفا بوده دستتون شفاست من میخواستم بگم اگه میشه من مادر منم دعا کنید نشدی به ما خیلم هم خطور نمی کردی یه روز مادرم زندان ما نمی نه تو دوست داری آزار می دی نه دیگه تحمل این بازیه رو ندارم تو آدم کاشی بول میگیری آدم میکشی برات هم فرقی نمیکنه کیه با چیه با چه جرمی حکم قتلش ساده شده این روز هم که دور دور خیانت و قتل و آدم کشیه کارو باره تو سکس بود. بگره خود روشی اگه یکی پول زیادی بهت بده اتا بکم میکوشیم لقصه ارسومین است که هلی شهازه خانم گاهی وقتا دلم میخواد بذارم برم کشکی کسی که بگی نه و خلاص با هر جوابی که میگی هزار تا اتفاق منتظرته اگه بگی نه نمک و حرومی هستی که زندگی تو سیاه میکنم نمیذارم آب خوش از گلی پایین داره همین که جون این مردم بدبخت و بیچاره رو دادی زیر دست اون دخترت کرد بزشکی هیچی نمیتونه بسه یک جاپ بیشتر بر اون واقعی نزستیم اینا مشکلشون پولو بدهی نیست میرم که این بهانه رو ازشون بگرم و اکیه پرستی هم پیدا کنیم با شکبازیه واسه چیه بچی منو کشون می کنه اینجا یه پیغام براتون بشتم به خاطر همین گفتم بیاین اینجا با دکتر صحبت کردم گفتم میخوام بریم قبول کرد قرارم گذاشت حالش خوب بود خودم ناییدنش ولی رابطه اون میگه حالش خوب بود. از اخترشم خبر داری؟ محصومه نه خبری ندارم کی میتونیم بینیم ببینیمشون؟ من به شما گفتم یه نفر نگفتم. نمیتونم یه لشتر آدم با خودم ببرم تو زندان رو بیارم بیرون اینجا زندان مسافر که نیست من تنها میرم نه آقا بیا با خودم نمیتونم ببرم تو زندان من آقای دویتر فری ندارم اینشون مکنم با صحبت کنم خدا بیا عجب تو از ولی وقت زیادی نداری. فقط چند دقیقه باشو چند دقیقه تو همجا بایستا معلوم برمیگردن اینو اشفده اینو تای تای درسته باشو بریم باشو با قرور و حیبت و جایگاه رو بخوان اینجوری بشکنن قبل این که بیایی فکر می کردم چقدر غریبم الان با لمس خونکای این آوی که برام آوردی یه لحظه یاد لوای تشنه اولاد حسین افتاد آدم دل شکسته حس قربت حسین بهتر درک کنید آخه شان شما یه همچین دخمه ایه خب ببین شکوش چی میخواد همونو بهشون بدید ولتون کن حتا اگه شرف هم بخواد ها بابا شما چرا انقدر همه چیزو پیچیده میکنید چیزای پیچیده رو نمیشه با ساده دیدن ساده کرد شما با لج بازیتون پیش درپیش کنید اینا رو به هدفشون نزدیکتر کنید شوخی چرا خودخواهییم شما اگه این گوشه بیفتیم بمیلین مردم میفهمن شرافت شما حفظ شده خواهش میکنم بروفزم. کاری که شکوم میخواد انجام بدیم به خاطر من به خاطر دخترتون به خاطر مردم بدبختی که شفایی بچهاشون دست شماست هیچ وقت فکر نکردم منم که حال مردمو خوب میکنم شفا و سلامت دست خداست اصلاح جامعه هدف نیست نتیجه عمل تک تک ما آدم است. من اگه شرافت ها ما بذارم زیر پا خیال میکنی برم میکنن به حال خودم باشم برم تو اون خونه به مریضان برسن اصلا تا آخر آقام بعد بهشون باش بدم وقتی چی میشه؟ هیچی میشی شرافت خودم شرمنده میشه به من گفتین بیام اینجا که این حرفای تلخو محیز در رو به هم بزنی این دمک رو زخمم بپاشی ببر ناست چرفی هم برای گفتن ندوشتن باستن بیای اینجا که ببینم اینجا بدون من زنده بیرون نمی از اینجا. یه نصیت یه میخوام بد بکنه. اینا یه چیز رو یادشون رفته سر همینم هم موندنی نیست. مردم مردم رو یادشون رفت. کاش میشد من و من شما خدا رو دوست داشتم اگر پسی خود و منده هاش دارن حضرت حالتون رو بخونه برای شما گوشه این زندان خدا هست صداتون رو میشنفه بلی من هر وقت داشتم نبوده موقع که مادرم بریض بود موقع که میراد مرد هر وقت سر هر دو گیر کردم خیلی وقت من باش ایش کار دارم بلی او هیچ کاری با من نداره خدا من رو دوست نداره من یاد گرفتم دیگه آویزون خدا نباشم رو پاهای خودم بیستم عویزان خدا نباشی معنیش نیست که رو پای خودت واسطی بعد عویزان بنده خدا باشی. خدا چیزی از بنده هاش نمیخواد ولی هیچ بنده ای نیست که چیزی نخواد یا برو دیگه خالو میخوای ما رو انم خوردم بندازیم برو دخترم دست خدا به با هم بند خوشبال خدا با این بندش منتظر کسی هستی؟ نه. برو با من اینجا. واه خب دیدم غریبی. مال مهندس کی؟ برو با خودت اصلا دور ساکا. برو با من شوجنام. خب دیدم یه لنگ پا ورشادی اینجا گفتم یه آبی دونی چی؟ آقا هیچ چیزی نمیخواد. دست درد نکر نه در در با بابا. ولی آب می‌خوای چی می‌خوای؟ برو بریم. چای دورو ندار که اصلا. می‌خوریم می‌کنم. برو برو. یه ما پیدا قول بیا بونی. بیا باید چرایی یه فسته از برای سون دست مهربانو بکنی گرش تا وقتش بشه چرا میخونه نمیشه فروریم هم یه روز برده کیل میافتم حالا چی هست نشمه امیز یکی خبری نشون به طیب رو برگرده برام نشد شما یهو خود من نه حرف اینو شما که جور نکردی کردی نمیشه بده سفر بخونه زریفه داداشت برو گوشه ناتون برو میگم داداشم آقا بهروز بیا سر وقتتا با تو شکر خوردم شکر خوردم رفتم رفتم چاش چاش کجا رفتم بگیرم چی چی چی چی چی چی این که شوری